سوال کردن رسول روم از عمر از سبب ابتلاع ارواح با این آب و گل اجساد. گفت یا عمر چه حکمت بود و سر حبسان صافی در این جای کدر. آب صافی در گلی پنهان شده. جان صافی بسته ابدان شده. گفت و بحثی شگرفی می کنی. معنی را بند حرفی می حبس حفظ کردی معنی آزاد را. بند حرفی کرده ای تو باد را. از برای فایده این کرده ای تو که خود از فایده در پرده ای. آن که از ری فایده زاییده شد چون ندیند آن چه ما را دیده شد. صد هزاران فایده است و هر یکی ست هزاران پیشان یک اندکی. آن دم نطقت که جزو جز پاست فایده شد کل کل خالی چراست تو که جزوی کار تو با فایده است پس چرا در تن کل آری تو دست گفت را گر فایده نود مگو ور بود هل اعتراض و شکر جود شکر یزدان توق هر گردن بود نا جدال و رو ترش کردن بود گر ترش رو بودن آمد شکر و بس پس چو سرکه شکر بویی نیست کس سرکه راگر راه باید در جگر گو بشو سرکنگرینو از شکر معنی آن در شعر جز خبت نیست چون قلا سنگ است آن در ضبط نیست